کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود و نفشه در قدم او نهات سر به سجود به جام سبوهی به ناله دف و چنگ به بوس قبغب ساغی به نغمه او، به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ که همچ روز بقا بغا هفتهی بود معدود شد از خروج ریاهین چ آسمان روشن زمین بختر میمون و طالع مسعود ز دست شاهده نازک ایزاو ای سال دم شراب نوش و رها کن حدیث سعاد و سمو جهان چو خلد بر این شد به دور سوسن و گل ولی چه سود که در وی نممكن است خلود چه گل سوار شود بر هوا سلیمان وار سهر که مرد در آوید به نغمه داوود به باغ تازه کنایین دین زرتشتی کنون که لال برفروخت آتش نمرود بخواه جام سبوهی به یاد آصف عهد وزیر ملک سلیمان اماد دین محمود ببود که مجلس حافظ به یمن تربیتش هر آن چه می‌طلبت جمله باو شدش موجود